بخش چهاردهم فردا سحه ال طلو حسن دوباره پیدا شد فرز آمده بود که شب نشده کارم را به یک سر می برسانم چند روزی میشد که کلان از دیدنش میخواستم تگری بزنم هر روز مثل جغد خبرهای بد میآورد گرچه جغد به دادن خبرهای بد معروف نیست و تمام روز را رو مثل گاو خواب است اما من از آن جهت گفتم که حیوان شومیست پرسید خب داداش امروز چه کاری برای ورودت که یادی گفتم میام حالا دنبال مایه تیلام انگار که بقیه مردم صبح تایله شام دنبال چی گفت، از کی میخوای جورش کنی؟ عقلم به هیچ جا قطع نمیداد. تنها آدم پولداری پول که دورو برم میشناختم، همین هایی بودن که میخواستن به هر قیمتی یک بازاریاب ازم در بیاورند. آنها هم که فقط بلد بودند آدم را تیغ بزنند. دست بده نداشتند. توی شش و بشه همین فکرها بودم که یک بارگی یاد رزه افتاد این رضا که میگویم غیر از آن رضای خدا بیا است. گفتم، راستی حسن، به نظر رضا چطوره؟ کدوم رزا؟ رزا، رزا گامبو؟ برق افتاد و گفت ای وله عالی خودشه، برو سراغش. اسم هر خر دیگری رو هم که میگفتم حسن همین برخورد را میکرد. نه رزا گامبو با هیچ قرار و قانونی جز عالی و خودشه به حساب نمیآید اسم رضا گامبو را دو سال پیش خودم رویش گذاشته بودم. قصد داشتم اینجوری کمکی در حقش کرده باشم. قبلا همه رضا رضا رزا خپل یا همان خپل خالی صداش می زدند که بعدها من دست به کار شدم و این اسم را برایش انتخاب کردم. گامبو چاق بودن آدم را به شکل خیلی قشنگ نشان میدهد که نسیخ به سوزد نکبا. اما خپل یا خیکی تمس خرامی زند و ممکن است گاهی های چاق بابت این موضوع دلگیر شوند. پدر رزا کارمند بازنشسته شرکت نفت است. چند روز پیش خیلی اتفاقی آمارش را گرفته بودم که از بابت بازنشستگی پیش از موعد پول قلمبه‌ای به جیب زده است. روی این حساب با خودم گفتم اگر بتوانم یک پلنیک درست و درمان بزنم شاید بشود 200 تا هزار تومانی ازشون خلاص کرد. بعد از ظهر همان روز رفتم سربختش خانه خانهشان توی کوچه خودمان است دوتا در آنورتر از خانه حسن اینا زنگ درشان را فشار دادم و رفتم آن دسته کوچه به دیوار روبروی خانهشان تکیه زدم کمی معطل شدم عوضش رضا هم با آن تیپ مخصوصش آمد که من آشقشم توی خانه عرقگیر سفید می پوشد با یک زیر زیرشلواری سبز کل و اردکی که همیشه تا روی شکمش بالا می هر وقت هم که میبینی، زیر بغل و خط زیر سینه هاشو و گردی دور نافش خیص عرق است. موقعی راه رفتن که محشر است. انگار که زانو نداشته باشد مثل اردک قیقاج میرود. خیلی موسموس نکردم. یک چاخانی سرهم کردم و قضیه پول را پیش کشیدم. چیزی نگفتم. اینقدر بیخیال توی صورتم زور زده بود که پاک گیج شدم. اولش فکر کردم، شاید متوجه اصل قضیه نشده باشد برای همین یک بار دیگر خیلی شمرده شمرده بهش فهماندم که پول لازمم اما باز ریختش تغییر چندانی نکرد فقط شلوارش را کمی بالاتر کشید کلاً از مرحله پرت بود خدا میداند وقتی کسی لنگ پول میشود این جور قیافه ها چه پدری اصالت بچه آدم در میآورد باز ناامید نشده. دو سه بار دیگر از هر دری که بلد بودم بهش رساندم که احتیاج زیادی به پول دارم و روی جیب مبارک پدرش حساب باز کردم. حتی راجع به اینکه مسئله مسئله مرگ و زندگی‌س هم تاکید خوبی کردم. رفته رفته ملتفت شد گفت: تا "تاکی. وقت گل نی. میگم فوریه، همین حالا میخوام. بابام الان خوابه که. خب تو یه توکی پا برو بیدارش کن. آخه تازه خوابیده، دیشب شب بوده، خسته است." مگه بابات بازنشسته نشده بود چرا الان چند روزه توی یه شرکتی سرای داره عجیبه بود که خبرش هنوز توی محل نپیچیده بود گفتم بس خبرشو کی به میدی؟ تا شب فکر کنم بیدار میشه بهش میگم خیالم راحت‌تر شد آمدم برگردم که چیز مهمی یادم افتاد گفتم رضا فقط به بابات نگی بوده واسه کی میخوایا؟ واسه چی خب اگه اسم منو بشنوه که سر کیسرو شل نمیکنه خر خدا پس چی بگم؟ این پسر رو تنها استعدادی که داشت همین استعداد چاقی بود کلا هیچ مطلبی زیاد براش جا نمیافتاد. گفتم نمیدونم اسم منو هر چی میگی بگو؟ خود یه جوری را ریستش کن قول مردانه داد که اسم من رو نیاورد اما اگر میخواست با پدرش هم همین طوری صحبت کند که با من حرف زده یک پول سیاه هم گیر من نمیآد. تا شب صبر کردم. آخرهای شب بود که رضا زنگ در را زد. پایین چه رفتم دیدم بیچاره دارد مثل چی نفس نفس میزند نداییده بود اما همین که دهنه را شل کند و آن همه هیکل را از آن سر کوچه راه بیاندازد این طرف او را به هنهن میاندازد سلام. نشد ناشولاپس. جو نشد. چرا؟ چی بهش گفتی؟ عابد هنش را قورت داد و گفت: گفتم پول میخوام. دستگرد تو جی وقتی فهمید سی سد و هزار گفتش ندارم خب تو بعدش چی گفتی؟ صاف توی صورت هم نگاه کرد و گفت هیچی به خودم حرفی نزدم انگار که هنر کرده حرف نزده گفتم اصراری چیزی هیچی ندیگه نه نپرسید نه واسه کی میخوای؟ هنوز داشت هن میزد چرا؟ مگه میشه نپرسه؟ صحبت سیزت هزار پوله. خب، تو چی گفتی؟ هیچی؟ تو گفتی حرفی در نزنم. منم نگفتم. میشد در مورد حرفایی که باید میزده چیزهایی بهش بگویم. حتی میشد همانجور که وایس یک لگد قایم توی شکمش خالی کنم. اما جدا طبقه دارید همش آدمی با این کارها چقدر تغییر کنه. جوری که بفهمد تا چهت از دستش شکارم باش دست دادم اما در عوض او خداحافظی گیر میبهام کرد و رفت. اگر حسم میفهمید که تیران به سنگ خورده محال بود که به این راحتی دست از سرم بردارد. روی این حساب خودم پیش قدم شدم و شبانه بهش تلفن کردم. خواهر کوچیککش گوشی رو برداشت. خیلی تقلا کرد به من بفهماند که دارن شام میخورند و اگر میشود بعدا زنگ بزنم. اما جف پایم را توی یه کفش کردم که هر جوری هست حسن را پای تلفن بکشاند. به او گفتم که این یک مسئله فوری فوتی است و بیشتر از آنچه فکرش را بکند به آینده برادرش مربوط می شود. متوجه چیزهایی که بهش گفتم نشده بود ولی حسن را صدا زد بچه خیلی شیری نیست من را یاد بچگی های خود هم می اندازم. تو رو خدا و ما رو می بینی حسن؟ واسه پول دار شدن هم پول گیر نمیاد. دانش پر بود و هنوز داشت مل و مروچ ادامه دادم. سیصد ست ها نمیتونم از کسی بکنم اون وقت فردا رو باش که بخوام از همین ها بگیرم بکیرم دهنش خالی تر شد چرا؟ چی گفت؟ هیچ. وقتی باباش میفهمه صحبت این همه پوله میگرخه راست میگی باباش خیلی بد پول به از اون ناخون روزگاره آی گفتی روزی افتاده دست قوزی شام چی دارید حسن؟ خب دوباره پیگیری کن کیو رزارو، رو اون پخمه زبون نمیفهمه که شام چی دارید حسن نمیدانم از کجای حرفم برداشت کرده بود که برای صلاح مشفرت بهش تلفن کردم آخرین تکه سیزی زمینی رو که توی حلقش گیر کرده بود قورت داد و گفت او کویده با برنج خب برو سراغ یکی دیگه رضا رو ول کن نمیشه حسن یه چیزی میگی نشودنی هر چی میزنم پشت و رو در میاد چی نمیشه نمیشه به اینکه این که هر چی زدم راه نداد. از خونم که بیشتر از این نشد بگیرم. الان بالا پایینم به چلونی میشه صد تومن. دیگه برم سراغ کی؟ تخمشه که من نخورده. این همه آدم. آدم، آدم کجا بود؟ یکی از یکی تر. خوبه خوبشون تایی که تو تا این تاری. بالاخره باید از یه جورش کنی. از کجا؟ من چاله قرضم پر شده حسن. میگی برم نزور کنم؟ نخره گناهه. پس می‌خوای برام سعود کنم؟ ترجیح داد با من جر نکند. گفت: نگران نباش رفیق ما پشت تو این سیستم آموزشهایی هست که موفقیت رو تضمین میکنه. چی میگی حسن؟ هیچ تو این دنیا موفقیت من رو تضمین نمیکنه. هیچ آدم عاقلی به من همچ تضمینی نمیده. این حرفا نزن. با آموزشها موفقیتت با راجب آموزش ها چیز زیادی نمیدانستم. اما همین قدرش معلوم بود که مشت این جماعت خالی خالی هم نیست همینقدر که از حسن کوچول یک همچه تخم جنی ساخته بودند خودش کم چیزی نیست یا مثلا خودم یادتان نرود که من از اولش قصد داشتم دستشان را توی پوست گردو بگذارم اما تهش به این روز افتاده بودم گفتم خب پس اگه اینطوریه یه, یه چندتا از اون جذبه رو بده بخونم بلکه یه فرجی شد اونا که مال الان نیست اونا مال بعد ورودته زکی دیگه بعد از ورود جذوه میخام چیکار کنم الان لنگم راستی امروز یه فكری به کلم زد حسام چطوره برو از حسام بگیر تو رو گیر آوردی ا هسن کدوم خری این همه پولو بده به من گفتی کی حسام حسام خله حسامو تو نمیشناسی اون جون به اسرائیل نمیده بیاد پول به من بده اصلا بیا خودت رفاقتی واسم یه کاریش بکن با منی نه با امو قربون پنپازنم تورو دارم میگم دیگه من که نمیتونم چرا وگه چته خودو دست کم نگیر منو تو نداریم که واظنم که خوب شد اصل و با هم پست میدم اصل و فر مربوط به مساله پولهای نزول است ولی من از لغتش خیلی خوشم میآید نسبت به اینکه بگویید پست میدم بهتر منظور آدم را میرساند. به جای آنکه به پیشنهاد خوبی که بهش کرده بودم جواب بدهد شروع کرد به اسما ریسمان بافتن هر جوری که بلد بود از زیرش در رفت دست خودش هم نبود ها یادش داده بودن که در برابر هر پیشنهاد گمراه کنندی چجوری تفره برود آن شب که از حرفهایم با حسن چیزی آیدم نشد فردام که هرچه به در و دیوار زدم کسی به ذهنم خطور نکرد آخر آخرش هم مجبوری عقلم به همان حسام قرد Thank you.